کتاب دختر بلفی، پسر آتشی و, چهل و شش افسانه دیگر افسانه‌های شیرین دنیا نویسنده اندرو لنگ با ترجمه سارا قدیانی ارائه شده است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 کوه شیشهی در روزگاران قدیم یک کوه شیشهی بود که روی قله اون قلعه از طلای خالص قرار داشت جلوی قلعه درخت سیبی بود که رو شاخه هاش پر از سیبهای طلایی بود هر کس که موفق می شد یه سیب و بچینه اجازه داشت وارد قصر طلایی بشه اونجا توی یه اتاق نقره خانم خانوم تلسم شدهی نشسته بود که در زیبایی و افسونگری همتا نداشت. او به اندازه زیباییش ثروتمند بود چون همه اتاقهای قلعه پر از جواهرات بود و صندوقهای طلا کنار دیوارها چیده شده بود. مردان شجاع زیادی از راههای دور به اونجا می تا بخت خودشون را امتحان کنند. اما تلاش‌های اونها برای بالا رفتن از کوه بیفایده بود با اینکه همه نعلهایی با میخ‌های تیز به پای اسب پاشون می‌کوبیدند اما هیچ کدوم نتونسته بودند بیشتر از نصف راه رو بالا برند و همه به پایین کوه پرت می‌شدند گاهی اوقات دست و پای میش اما حتی گردن بعضی از اونها هم خورد می‌شد شاهزاده خانم زیبا پشت پنجره مینشست و مردان جسوری را که سعی میکردند به کمک اسباشون به او برسند تماشا میکرد چهره او همیشه به مردها اعتماد به نفس میداد و جوانهای زیادی از چهارگوشهٔ دنیا میومدند تا او را نجات بدند اما هفت سال گذشت و هیچ تلاشی نتیجه نداد و شاهزاده خانوم همچنان منتظر بود تا کسی از کوه شیشهای بالا بیاد جنازه های ها و سواره هاشون دور کوه افتاده بود و ادهی که زنده مانده بودند زخمی بودند و نمیتونستند حرکتی کنند. اطراف قلعه شبیه به یک قبرستان بزرگ شده بود. سرانجام وقتی که فقط سه روز دیگه مونده بود که هفت سال به پایان برسه شوالیهی با زره طلایی، سوار بر اسبی تنومند به طرف کوه مرگبار به راه افتاد او پاهاش را به پهلوی اسب کوبید و حیوان به تخت از کوه بالا رفت و وقتی به نیمه ی راه رسید مرد آروم سر او را برگردوند و اسب بدون اینکه لیز بخوره یا سقوط کنه از کوه پایین اومد روز بعد او دوباره اومد و اسب را به بالای کوه روندش حیوان با چنان مهارتی از کوه شیشهای بالا رفت که انگار رو زمین صاف راه میره. جرقه های آتش از زیر سمهاش پراکنده می‌شدند. بقیه مردم حیرت زده اونها رو تماشا می‌کردند. وقتی شوالیه به قلعه رسید و چیزی نمونده بود سیب رو بکنه ناگهان اقاب بزرگی به هوا بلند شد و بالهاش باز کرد و به صورت اسب کوبیت حیوان بیچاره شیحهی کشید و به عقب پرد شد و دو پای عقبیش از لبه قله لیز خوردند و به همراه سوارش به پایین سقوط کردند از آنها جز بجاز استخانهای شکستی که درون ذره هاشون صدا می کرد چیزی باقی نموند یه روز بیشتر به پایان هفت سال باقی نمونده بود که سرکله پسر جوونی پیدا شد جوونی خوش قلب و شجا که با وجود جوونی قوی و نیرومند بود او میدونست که چه شوالیه هایی جانشون رو در این راه از دست دادند. اما ترس به دلش راه نداد و پای پیاده شروع به بالا رفتن از کو کرد او مدت ها بود که از پدر و مادرش شنیده بود شاهزاده خانوم زیبایی در قلعه طلایی بالای کوه شیشه ای زندگی می‌کنه. بالاخره تصمیم گرفت شانس خودشو امتحان کنه اما اول به جنگل رفت یوز پلنگی را کشت ناخونه تیزش رو کند و به دست و پای خودش بست و با کمک چنین سلاحی پسر با شجاعت از کوه بالا رفت آفتاب داشت غروب می کرد اما او تازه نصف راه را طی کرده بود پسر از شدت خستگی به سختی نفس میکشید و زبونش از تشنگی خشک شده بود ابر ای در آسمون ظاهر شد اما هرچه پسر التماس کرد یک قطره بارون ببار نتیجه ای نداشت ابر از روی سرش رد شد بدون اینکه حتی های پسر رو خیز کنه پاهای پسر زخمی و آلود شده بودن و او فقط میتونست از دستهاش کمک بگیره شب کم کم از راه میرسید و پسر به چشمهاش فشار آورد تا ببینه چقدر بالا اومده اما ای که زیر پاش دید باور نکردنی بود در ریع امیق زیر پاش که اجساد زیادی در اون افتاده بودند آتش گرفت دود سیاهی از روی بدن‌های نیمه پوسیده انسان‌ها و اسب‌ها به هوا بلند می‌شد و این عاقبت همه کسانی بود که مثل او قدم در این ماجرا گذشته بودند هوا کاملا تاریک شده بود و فقط نور ستاره‌ها کوه شیشه‌ای را روشن می‌کرد پسر بیچاره همچنان با دستهای خونآلودش به کوه شیشهای چسبیده بود او دیگه هیچ تلاشی برای بالا رفتن نمیکرد چون همه نیروش تمام شده بود و با ناامیدی منتظر مرگ بود اما کمکم کم خستگی بر او چیره شد و بدون اینکه توجهی به موقعیت خطرناکش بکنه به خواب عمیقی فرو رفت ولی با همه اینها پنجه های او محکم در شیشه فرو رفته بود و باعث شد سالم بمونه و سقوط نکنه. عقابی که به شوالیه و اسبش حمله کرده بود نگهبان درخت سیب طلایی بود. او هر شب در کوه میگشت و مواظب همه چیز بود. اون شب هم به محض اینکه ماه در آسمون پدیدار شد پرنده به هوا بلند شد و دور کوچرخید و چشمش به جوان افتاد. اقاب که خیلی گرسنه بود فکر کرد تومهی که گیرش اومده حتما یه لاشه تازه هست. به همین دلیل به طرف پسر حمله کرد. اما او بیدار بود و با دیدن اقاب تصمیم گرفت از اون پرنده برای نجات خودش استفاده کنه. اقاب پنجه های رو در گوشت پسر فرو برد. اما جوان درد را تحمل کرد و بدون اینکه فریادی بزنه پاهای اقاب رو محکم گرفت پرنده اونو به هوا بلند کرد و دور برج تو دو قلعه چرخ زد جوون که همچنان با شجاعت خودشو به او چسبونده بود عصر طلایی رو دید که زیر نور ماه مثل تکه جواهری میدرخشه بعد چشمش به پنجره ها و ایوان ها افتاد در کنار یکی از آنها شاهزاده خانوم زیبا با چهره ای غمگین به فکر فرو رفته بود بعد پسر متوجه شد به درخت سیب نزدیک شده چاقوی کوچیکی که تو جیبش بود بیرون آورد و هر دو پای عقاب را برید پرنده از شدت درد به خود پیچید و میون ابرها ناپدید شد جوون هم روی شاخه های درخت سیب افتاد سپس پنجه های اقاب را که در گوشتش فرو رفته بود بیرون آورد پوسته یکی از سیبار و کند و رو زخماش گذاشت و فوری خوب شد او تعداد زیادی از سیبار و چید و در جیواش گذاشت و بعد وارد قلعه شد جلوی دروازه قلعه یک اجده بزرگ نگهبانی می‌داد. اما به محض اینکه پسر یکی از سیپ رو به طرفش پرت کرد، ناپدید شد. همون موقع دروازه گشوده شد و جوان باقی پر از گل و درخت رو دید. شهزاد زیبا در کنار همراهانش روی ایوونی در وسط باغ نشسته بود. به محض اینکه چشم دختر به جوان افتاد به طرفش دوید و اونو صدا کرد. سپس، همه ثروتش رو به جوون داد و پسر حاکمی پر قدرت و ثروتمند شد اما هرگز به پایین کوه برنگشت چون عقاب نیرومند که نگهبان شاهزاده خانم بود میتونست با بالهای بزرگش اون گنجینه عظیم رو پایین ببره اما او هم بعد از از دست دادن پنجه هاش مرد و بدن ویجونش رو در یکی از جنگل‌های کوه شیشه‌ای پیدا کردند یه روز که جوون همراه همسرش شاهزاده خانم در با قدم میزد از لبه کوه به پایین نگاه کرد با تعجب دید اده زیادی در دامنه کوه جمع شدند او در سوت نقرهای خود دمید و یک پرستو که پیغامبر قصر طلایی بود به طرفش اومد پسر به پرنده کوچک گفت پایین برو بپرس چه اتفاقی افتاده؟ پرستو به سرعت رفت و برگشت و گفت خون اقاب همه مردم رو دوباره زنده کرده. همه اونهایی که در دامنه این کوه کشته شده بودند انگار که به خواب رفته باشند امروز بیدار شدند و دنبال اسباشون میگردند. همه اهالی این اطراف با شنیدن این خبر پایین کوه جمع شدند تا این اتفاق باور نکردنی رو با چشم خودشون ببینند. کانال تلگرامی هزار داستان های افثانه ای سوتی نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی تی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 .com mehrandosti.blockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی